اس به استاد حق. هنگامی که سرم را رو از روی کتاب برداشتم، رابازارتارز را دیدم که روی صندلی راحتی در اتاق من نشسته بود. او لبخندی زد و دستی به شانه‌ام کشید. رابازارتارز: من لحظه این هم از فکر تو قافل نمیشم. پال: شگفتانگیز است، اما چرا؟ رابازارتارز: علت آن دم معنوی توست. حالی تو با نور تابناکی می‌درخشد و آنانی که می‌توانند آن را ببینند می‌دانند که نمایشگر نفس یک روح نیکوست. قدرت معنوی در تو در حال رسیدن به مرحله بلوغ است و تو مجرای خروجی مناسبی برای جامعه عمل پوشیدن آن تعبیه نبوده ای. عشق من از طریق تو به این جهان زمینی جاری می شود پاد من این را نمی دانستم و به همین علت حیرت زده شده هم البته تو نمی دانی. بیشتر روح های پیش نمی دانند که به درجات بالایی از تکامل معنوی دست کافتند تنها آنانی که بسیار نگران وضعیت روح خود بوده و در خصوص پیشرفت تکاملی خود بیش از حد سخن میگویند واقعاً واقعا تکامل نایافته میباشند. آنها صرفاً وانمود میکنند. من به تو همانگونه نیاز دارم که تو به من. این سخن غیر عادی نیست زیرا همه سفیران روح به کسانی مانند تو در روی سیاره زمین احتیاج دارند. این یک نیاز است چون ما برای حیات ملزم به اتکای به عشق بشر هستیم. پال منظورتان چیست؟ من همیشه اینگونه گونه استنباط کرده بودم که یک سفیر هیچ نیازی به عشق آدمیان ندارد و اینکه او میتواند تنها با برکات و فیض الهی زندگی کند. رابوزارتورس. پس توجه کن. باید بگویم که داریم به رازهای بسیار عمیقی نزدیک می‌شویم. به عبارتی آنچه میگویی حقیقت دارد اما کسانی که فقط در رابطه با خیش خود و تنها به اتقای فیض الهی زندگی میکنند نمیتوانند برای مدت زیادی به این روال ادامه دهند وگرنه ذهن و جسم آنان دچار ناهنجاری و عدم تعادل میگردد مادامی که ما در این کالبد به عدای وظیفه روی سیاره زمین مشغول هستیم چه یک استاد باشیم که یک کارگر استاده لازم است نیروهای معنوی را میان خود و هر چیز دیگری به تعادل برسانیم از یک درخت گرفته تا خانه یک کیوان یا انسان و اما این چه ارتباطی دارد با اینکه یک سفیر روح کاملا خودکفا باشد مگر نه اینکه او میتواند در وضعیت آگاهی کیهانی بسر برد آیا این یک عقیده نادرست مبنی بر استنبات غلط آدمیان است؟ اکنون به تو میگویم این هم تا بدانجا حقیقت دارد که مادامی که سفیر در شکل انسانی به سر میبرد میباید عقیدن به قوانین طبقه زمینی عمل کند آیا گفته جاندان شاعر انگلیسی را به خاطر میآوری که در قطعه شعر وقف 17 میگوید؟ هیچ انسانی جزیره مستقل نیست تا هنگامی که من در اینجا در شکل انسانی حضور دارم می باید بر طبق قوانین طبیعت عمل کنم یک مثال آیا همه موجودات زنده از یک جنس معنیست زاده نشده اند؟ آری هر بشری می تواند فراسوی قوانین طبیعی زمینی زیست کند اما برای این منظور به کمک هم خود نیاز دارد اکنون این سؤال برای از پیش می آید که یک استاد برای وجود خود چرا به عشق انسان ها نیاز دارد پس این را بدان که در جهان ماده ما به مساعدت یکا یک افراد برای حیات خود نیازمندیم. اما اگر عشق همگی افرادی را که روزانه با آنها ارتباط داریم در اختیار داشته باشیم قدرت‌های درونمان برانگیخته شده و مدرایی به سوی عشق خدا باز می می‌کنند که از طریق دیگران و در نتیجه عشق آنان میسر شود عشق مادر به فرزند بهترین مثال ممکن است. یک مادر می‌تواند عشق بی‌شائبه‌ای به طفلش داشته باشد اما اگر طفل از نظر ناله و زاری و سایر وجوه زندگی بیش از حد ناسازگار باشد خستگی و افسردگی بر او غلبه میکند و به زودی صبر و تحملش به انتها می رسد و اگر این امر برای هفتههای متمادی ادامه پیدا کند ممکن است موجب گسستن پیوند محبت ما بین او و فرزندش گردد او دیگر نمیتواند از نظر معنوی به رشد و حیات تکاملی خود ادامه دهد اما اگر عکس آن رخ دهد اشق طفل او را صعود بخشیده حتی باعث ارتقای روحیه و معنویت خانواده او همسایگان و دوستانش هم می شود و هرچند اکنون او به واسطه این عشق در وضعیت آگاهی فلکی شعور کیهانی به سر می برد به کمک عشق اطرافیان خود حتی بالاتر از آن و به سوی وضعیت خدایی اوچ می گیرد پال این برای من گیج کننده است چرا یک استاد نیاز به اشقا آدمیان دارد؟ ربازارتار سخنده سرداد و گفت شب پیش به تو گفته شد که هر استاد حقی همیشه توسط سلسله نظام معنوی برای یک معمولیت خاص به این جهان اعظام می شود و اینکه او میتواند تواند به خاطر تحقق این رسالت مهم و کار با ارزش خود هر کسی را که می خواهد برگذیند. اما در حین انجام این کار او در ذهن کسانی را بن که قابلیت نساز کردن عشقی عظیم داشته باشند از نقطه نظر اسراری قضیه از این قرار است هر یک از افراد بشر همانند یک نیروگاه شبیه یک باتری است که شعاعهای اثری جریان عشق از خود ساطع می‌کند جریان عشق یک گروه از پیروان که هر یک به تنهایی از خود نسار می به جویوار عظیمی بدن می شود که مقصودی دوگانه را تحقق می‌بخشد. نخست به استاد فرصتی می‌دهد که از این جریان در راستای وظیفه خود در این جهان سود جوید او از امتیاز یک مجرای بزرگ عشق برخوردار می شود هر عدد مدیدان بیشتر باشد تأثیر عمل استاد هم وسیعتر می شود. مثلا به همین علت بود که یک بار به تو گفتم که من به بیش از یک میلیون واصل نیاز دارم تا به توانم خود را در این جهان به جا آورم. به منظور اجابت مقصود من از حضور در این جهان زمینی نیاز به مجرای وسیعی محسوس است. دوم اینکه عشقی که استاد از خود نثار می به تویش باز می گردد و دایره وصل او در مقایسه همانند خانواده ای می شود که از امنیت کافی برخوردار باشد آنگاه هنگامی که به کار خود در این جهان مشغول است معمولا مورد تجاوز نیروهای کل یا نیروی منفی واقع می شود و اگر انجام وزیفهش به مراحل بحرانی برسد که اغلب نیز همین چنین است به طوری که فرصتی برای لحظات آرامش در حضور الهی پیش نیاید ممکن است به یک سوم میل کند و تعادل معنوی خویش را از دست بدهد. این همان واقع بود که در خصوص موسی اتفاق افتاد. اشق مریدان حال مستکمی میسازد و او اغلب میتواند روی این عشق در مواقعه نیاز حساب کند. قطچند این نیروی عشق از جانب مریدان ماثر می شود اما در حقیقت این نیروی عشق سود است. من برای رهایی از بسیاری از محلکه ها به مساعدت تو متکی هستم این چون این است که ذهن من فرصت گذراندن لحظاتی را با خدا یابد. این عبارت آخر را فراموش مکنه این چون این است که ذهن من فرصتی برای گذراندن با خدا یابد. من میتوانم هرگاه که آرزو کنم به سوی خدا اوج بگیرم اما مادامی که در کالبد فیزیکی به ادای وظیفه معنوی خود مشغولم تا زمانی که مریدانم از عشق خالص و همیشگی برخوردار نباشند انجام وظیفه هم بیشتر به اجبار بدل می شود و ارزش معنوی خود را از دست میدهند. عشق مریدان و پیروان یک استاد حاله استواری برای او و خود آنان بنا می کند این امر در خصوص همه کلیسه ها و تشکیلات معنوی مستاق دارد اطراف این مراکب حاله ای پدید می آید که در تصاحب قدرت ای است. اطراف سازمان آن را دربر می گیرد و از نفوذ نیروهای بیگانه به آن جلوگیری به عمل می درون این حاله استاد می تواند با آرامش خاطر و همیشه حاضر در میدان به انجام وظیفه خیش بپردازد. اما هرگاه نزا و دو دستگی میان پیروان او چای شود به زودی در میابد که مجبور است عقب کرده و فقط با اتکاب عشق معدودی برای تحقق سرنوشت معنوی خود در این جهان بسنده کند. معلمی که در ارتباط با پیروان سهلنگاری کند به زودی افراد وفادار خیش را از دست داده و معالن خود را در میان جمعی نادان و ابله میابد که موجب زایع شدن هدف او شده و با خطاهای خود او را مورد استهلاکی بیش از حد تحمل قرار میدهند تعداد معدودی از استادانی که به منظور آموزش دادن به زمین آمدند دوچار این سرنوشت شدند عیسی بیش از اندازه به دیگران اعتماد کرد پیروانش عشقی را که او برای حفظ هیئت معنوی خود نیاز داشت در اختیار وی قرار ندادند در نتیجه تلاش‌های معنوی او اندک اندک تخفیف یافت و او خود قربانی اشتباهات خود واقع شد اگر تصور میکنی توانی بدون ایثار عشق یا دریافت عشق انسانی در این طبقه خاکی زندگی کنی پس سخت در اشتباهی به همین ترتیب یک معلم استاد یا هر روح پیشرفته اینیز به این عشق انسانی نیازمند است هرچند، در این حال لازم است بینهایت احتیاط کنی که عشق خود را به چه کسی نصار کنی این را بی هیچ تردیدی میگویم که تو نمی توانی به همه عشق نصار کنی به خاطر داشته باش که در جهان معنی دو جویوار از جریان ها وجود دارند یکی معنوی و دیگر منفی البته جریان های بسیاری بسیار نیز وجود دارند اما به خاطر سهولت امر در اینجا تنها اینجا را در نظر می گیریم. یک استاد حق به ندرت ممکن است اعتماد کامل ایمان عشق خود را در گروه شخصی بگذارد که در جویوار جریان منفی مستقرق شده باشد او وقت خود را با چنین کسی تلف نمی مگر آن روح در واقع یک روح بسیار پیشرفته رفته باشد که در دام قدرت منفی افتاده فقط در این صورت یا اینکه از جانب سلسله مراتب معنوی به مساعدت این روح گماشته شده باشد این تلاش نیرو و انگیزه معنوی او را مصرف میکند و احیانا درگیری با چنین روحی ممکن است موجب ایجاد عدم تعادل در جهت نیروهای منفی گردد و هرچه بالاتر باشی پس از سقوط بازگشت تو به فیض الهی دشوارتر بی تفاوتی پیشه کن و به اینگونه مردم عشق مورس آنها تو را تا به سطح منفی خود پایین میکشند. مجراهای روانی فیش را به روی این افراد باز نکن چون نیروهای منفی آنان همچون تار انکبوتی اطراف کا ود تو میکنند. واقعا کار مشکلی است که بخواهیم فرد را وادار کنیم نقاط ظریف، محصولات و عملکردهای کابد معنوی فیش را شناسایی کنند. گفتن این امر بسیار ساده است که استاد مواظبت فرد را به عهده دارد اما در عین حال چنین تصوری بسیار نابخردانه است این گفته معمولا که کلام افراد کاهل است همچنین یک مرید کاهل همیشه اظهار میدارد که خدا از وی مواظبت می‌کند و شواهد بسیاری نیز در تایید این نکته ارائه می‌دهد اما بار حقیقتی در اظهاراتش نیست من بگو چگونه خدا میتواند از کسی مواظبت کند که از فرت کاهلی فرصتی به خود نمیدهد که به عبادت یا مراقبه بپردازد. اکنون درمی‌یابید که اگر یک استاد فرصت کافی برای مراقبه بدست نیاورد و علت آن هم تقاضاها و نیازهای پیوسته مریدان او باشد، ممکن است از فیض الهی ساقط گردد. اما اگر بتواند به عشق پیروان و مریدان خود اتکا داشته باشد میتواند همان ارتفاعات خدایی را علال عبد حفظ کنند و روزهای متمادی را بدون مراقبه پشت سر داشته به کار در مسیر انجام مأموریت خیش در این جهان مشغول باشد هرچند عشق مورید باید از قماش عشق کیهانی و مبرره از انتفاعات شخصی باشد در غیر این صورت استاد اک نمیتوانه آزادانه عمل کند و به موفقیتی نائل نخواهد آمد یکی از نمونه های قابل ذکر در این خصوص از قرار زیر است در یکی از کلاس های مکتب یوگا تجربه ای در زمینه دعا به صورت دست جمعی انجام شد در این جمع تعدادی از پیروان تصمیم گرفتند هیئت اسیلی یکی از قدیسینی را که مدتها تیج فوت شده بود به طبقه زمینی فراخانی کنند. دعاهای آنان به موفقیت انجامید اما قدیس مزبور به شدت آنها را مورد نکوهش قرار داد. او می گفت که این افراد او را به خاطر علتی بی ارزش به این طبقه خوانده بودند. او میبایست در این هیئت تا زمان قابل توجهی باقی بماند و به این ترتیب از انجام مسئولیت های معنوی خود در طبقه ای که سکنا کرده بود باز میماند بنابرای مقیاد زمانی در طبقه زمینی این طول زمان ممکن است چیزی حدود 25 سال یا بیشتر باشد میدانی یک استاد عموما نمیتواند هر وقت که اراده کند قالبد انسانی فیش را متمهل نموده و این تبره را ترک گوید. اولا به خاطر وزیفه ای که میباید از نقطه نظر معنوی به جا آورد. و دیگر اینکه کشش دعاهای مریدان او را مجبور می‌کند در این جهان انتظار بکشد. بایدفن او باید تا زمانی که وظیفهش را انجام داده و عمر به حیات انسانیش به سر رسد در این جهان باقی بماند. به این علت است که من به عشق تو و سایر مریدان اک در مقیاسی کیهانی نیاز دارم، از یک نقطه نظر همه مردم را یکسان میابی. هر فردی مطمئن است میداند چه می‌کند. اما آنچه هر یک از وانان میداند از دیگری متفاوت است. آنچه من دارم به تو میگویم تماما از است که فقط از دانش طبقه پنجم سرچشمه میگیرد و حکمت است بسیاری از افراد حکمت خیش و پاسخ سؤال را یا از طبقه و یا از اترهای طبقه خاکی دریافت می کنند و تصور می کنند که بالاترین حکمت الهی را در دست دارند. با این یک توصیه آخر تو را تنها می دارم. همیشه به خاطر داشته باش. من همانقدر قدر به تو نیاز دارم که تو به من. پس به من عشق ببرد. عشقی که به یک سفیر روح نثار شود، صدباره به سوی خودت باز می‌گردد. مشروط پر اینکه از رفای قلب باشد. به زودی مقصد نهایی از حاضورت و وظیفه معنویت را در طبقه زمینی به تو اعلان خواهم نمود. شب بخیر.